همطور که پیشتر به آگاهی شما رسوندم اکسیون استادهی در مرکز شهر کوپنهاگ بعد از امروز برگزار خواهد شد کوپنهاگ یکی از شهرهای فعال در عرصه مبارزه با نقص حقوق بشر در ایران است که مرتب در طول سال تظاهراتی از این دست برگزار میشه و آقای علی آزاد فعال سیاسی مقیم کپناک فعال در این عرصه است و امسال هم با عنوان سی مین سالگرد قتله هزاران زندانی سیاسی عمدتا در تابستان 67 و البته پیش از آن بعد از انقلاب که هزاران زندانی سیاسی توسط حکومت جمهوری اسلامی جان باختند در شهرهای مهم اروپا به این مناسبت برگزار شد اما نوبت شهر کپنهاگ است که بعد از زور امروز برگزار میشه در جهت گرامی داشت یاد هزاران هموطن ایرانی که تحت عنوان زندان سیاسی در دهه خونین شست امدتاً در زندان ها و های، شکنجگاه های حکومت جمهوری اسلامی جان باختن. همونطور که گفتم آقای علی آزاد فعال سیاسی موقیم کپنک روی خط تلفن هست زمن صبح خیر به شما آقای آزاد میخواستم راجع به اطلاعیه اکسیون ایستاده در مرکز شهر کپنک ساهل کنم که کجا هست که شروع میشه و چه موضوعاتی را دنبال خواهد کرد. با سلام و من هم به شما صبح خیر به شما درود میفرستم ممنون از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتید تا ما در رابطه با آکسیون امروز و در رابطه با سیومین سالگرد قتل عام هزاران زندانی سیاسی در دهه شهست خصوص در تابستان 67 به اصطلاع با شما صحبتی رو داشته باشیم امروز ما ساعت یک تا ساعت دو نیم بعد از ظهر مراسمی را به صورت آکسیون در مرکز شهر کوپنهاک مقابل دفتر امنستی انترنشونال برگزار میکنیم. این به صلاح آکسون از طرف گروه های چپ و سوسیالیست ایرانی برگزار میشه ما هم به عنوان کمیته از زندانیان سیاسی در این اکشن شرکت میکنیم هدف ما مثل هر سال در رابطه با فرارسیدن سال روز این قتله هم زندانیان سیاسی که همزمان هست با بر ما به خصوص ده شهریور که در تهران و در شهرهای داخل ایران در این رابطه مراسم برگزار هستند همزمان این مراسم همونجوری که در صحبت های شما هم بود در کشورهای مختلف، در شهرهای مختلف، در خارج از کشور نیست به مناسبت همین به سلاب آقای به سلاب قتل عام، نستکشی زندانیان سیاسی بوده که در دعیه شست صورت گرفته برگزار میشه عدد ما این هست که به سلا بتونیم این مسئله رو به بوش مردم دامار به کسانی که در خیابان مرکز شهر رفت آمد دارن بهشون لایا و بیانه های مختلفی رو داریم به زبان فارسی داماردی انگلیسی که در رابطه با این موضوع روشنگری بکنیم که چه اتفاقی افتاده و همواره بر روی این مسئله خای که ما نه بخشیم و نفراموش میکنیم و برای دادخواهی همراه خانوادگان جانباختدان همراه همه مردم ایران که دی در این مسئله دخیل هستند به خاطر اینکه دوستی، آشنایی فامیلی بستگانی رو در این قتل از دست دادن به اصطلاح خانوادهرسی هستیم بخصوص از این جهت که بخشی از این جنایتکاران مطلع در ایران هستند زنده هستند و در حاکمیت هستند دخیل هستند و بایستی جوابگوی اعمال جنایتکاران خودشون باشند این مراسم با صورت به صورت ایستاده با عکس و پوستر و اعلامیه و صحبت با مردم هست. در رابطه با همین برنامه هفته دیگر هم روز شنبه 8 سپتامبر در کتابخانه پوینده هم ای دارین. در این برنامه چه گفته میشه؟ برنامه که به صورت سلا لوکل هست و نشست هست و سخنرانی هست عمدتاً بعضی از کسانی که خود شاهد این ماجرا بودن دهه شست در زندان بودن سنه های وحشتناک اون دورانو بسیار بازگو می کنن بخشی از این زندانیان سیاسی دهه شست بستن بخشی مربوط به فیلم و شیز هست که در سال جاری به سلا جمعوری شده و اسنادی هستی جمع آوری شده و کتاب هایی است که در این رابطه چاپ شده اینها رو معرفی می و یکی از مهمترین ترین بحث امسال در رابطه با این هست که چگونه این کمپین رو ادامه بدیم و چه مسائلی رو بیشتر fokus بکنیم این بار در رابطه با این هست که چگونه ما میتونیم در این کمپین بتونیم این رو به یک به صللا سطحی ارتقا بدیم یا در رابطه با چهارندشی بکنیم که گامی باشه برای اینکه آینده چنین مسائلی تکرار نشه و جلوی چنین قتل‌ها ما چنین جنایاتی رو در جامعه ایران گرفته بشه. ما این مسائل فوکوس می‌کنیم و طبیعی هست که افرادی که شرکت میکنن نظرات و اندشه های خودشون رو در میذارن، پیشنهادات خودشون رو در میذارن و برای یک سال آینده در این رابطه برنامه عملی رو در نظر میگیریم به خصوص این که بخشی از برنامه اسنادی رو که به صورت زنده بود به صورت به شناخته شده بود به عنوان بودند بودن که قبلا بی‌نام و نشان بودن، ولی مردم کشف کردند خانواده‌های جان باختگان پیدا کردند و جمهوری اسلامی در صدد از بین بردن این هستند متاسفانه در سال گذشته به صدا گورستانی رو که مربوط به جنبختگان دهه 60 خصوص قتل زندانیان سیاسی 67 بود در آواز این گورستان امثال با بردیزد با خاکی اکسام کردن و روی گور به صلاح جاده اتوبان کشیدند از این جور اتفاقات زیاد هست در, ته در تهران اقدامات قبل بود اما گسترده خب بوده مردم نتونستن رژیم همه را از بین ببره بارها اونجا رو به قول معروف شخ می‌زاده اما نتونسته اه که اه کل این ماجرا را به صلاح از بین ببره بخشی از تلاش ما در همین جابطه هست که این سند و این جایی که هست علاوه بر این که مکانی هست برای خانوادا که بتونن تصلاح پیدا بکنن و مورد سلاح عجر و غور خانواده ها تنها یادگاری از اون که پابر جاست غیر از این سندی هست که بایستی بمونه و یک دادگاهی یا یک جریانی که از سازمان ملر، سازمان های جهانی بتونن به سلا تحقیق بکنن و شفاف در رابطه با این مسائل به مردم اطلاع استمان در رابطه با اطلاع شما زمین گرامی داشته سیومین سالگرد قتلهام هزاران زندانی سیاسی در تابستان 67 زمن این که مسئول بنیاد برومن سال 67 قتلهام زندانیان سیاسی رو حدود پنج هزار نفر را پیش از آن یعنی بعد از انقلاب اسلامی تا 67 هم 12 هزار تن اعلام کرد. در اطلاع شما نوشته که خان ماکمان مجازات عادلانه آمران و همه کسانی که در این جنایت تاریخی دخیل بودند خواستار شدید الان هم که خودتون توضیح دادید که مقامات جهانی به این مسئله رسیدی کنند این چجوری میشه؟ الان سی ساله هر ساله فعالین خارج از کشور با ایجاد اکسیان، تظاهرات، اعتراض علی جمهور اسلامی کاری از پیش نمیرا و کی قرار این محاکمه شروع بشه جمهوری اسلامی به این قتلام اعتراف بکنه بله، من فکر می کنم که این بخشی از واقعیت و حقیقت هستسی متاسفانه مثللا به قابل قبول هست ما. تلاش های زیادی شده بخصوص در داخل ایران خانوادا هر سال با هزینه های سنگینی در رابطه با لا گرامی داشت این واقع و به فراموشی فرامموشی دارن تلاش میکنن. طبیعی هست که هر سال در رابطه با این مسائل سنها روشنگری های زیادی میشه در سال گذشته مثلا فرض نواری رو که از منتظری به جا مونده بود خیلی واضح و روشن روشن کرده بود که چه کسانی درش دخیل هستند خودش یک سند معتبری بوده در سالهای قبلش همین پیدا شدن گورستان های مختلف در سنندج در سقهز در اعواز در جاهای مختلف بوده و به اضافه اینکه که در قبل باز ما یک داد دای ایران تریبونالی رو داشتیم دو سه سال پیش که باز هم همین شکل بخشی از این اسناد از زبان شاهدانه از طریق خانواده های جانباختگان به صلاح تدوین شده و در یک دادگاه به صلاح بین المللی که این محاکمه شده و الان طبیعتا ما می بینیم که ده ده این مسئله هم در داخل جمهوری اسلامی هم در سطح طیف اصلا تلبا هم در ساعت بین المللی به صلاص حالت تابو گذشته و در مورد اون صحبت میکنن در رابطه با اون محکوم میکنن کار بسیار بزرگی هست ما با یک رژیم تروریست با امکانات وسیع به صلا مالی و نظامی و تدارکاتی امرو هستیم که خب طبیعی هست که خانواده ها جان و نیروهای سیاسی نتونستن دست پس این بار بیان که بتونن اینا رو به ماقره بکشن طبیعی هست تا زمانی که رژیم در صادق و بسیار مشکل است که رژیم هیچ جنایتی رو کرده به پای میز محاکمه کشان اما همین که این مشعل به صدا روشن بمونه همین که این خاطره فراموش نشه همین که اسناد جم بشه برای ما به صدا درخور همیت است و مهمتر از همه این هست که راست ما نه انتقام گیری هست که اینا رو به دار بکشیم یا محاکمه بکنیم یا به سر بکشیم هست این هست که چنین فکر و چنین اندیشه ای در این جامعه با سیم محکوم بشه به اصطلاح از تکرارش این واقعی جلوگیری بشه ما فکر میکنیم که به نوعی امروز افکار عمومی به نوعی تغییر کرده حتی بعضی از جریاناتی که خود سابقه کشتار مردم داشتن کشتار زندانیان سیاسی داشتن از جمعه تیف سلطنت طلب امروز خودشون بر این مردنا حرکت دارن میکنن که نبایستی زندانی سیاسی رو اعدام بکنن بخشی از به سلاح حالیتهای سیاسی یا پروپاگاند سیاسی این ها شد در واقع اون چیزی که ما به عنوان دستاورد این مسئله قرار دادیم این هست که این فکر به اصطلاح کشتار زندانیان، آزار شکنج و شکنجه و قتل عام و نسل‌کشی مسی محکوم بشه و ریشه این در جامعه ایران باسی خشکیده بشه و این بخشی از کار ماست و بخشی هم داری هست است در سطح بین بین‌المللی هست که چنین افکار و چنین روش شنی و کثیفی رو باسی جلوی سرجلوه گرفت و اینو محکوم کرد و افکار عمومی جهان نبایست اجازه بده که چنین عملی در هیچ جایی از دنیا tekrarmış ve indik کاری هست که نه امروز نه فردا هیچ موقع تعطیل بردار نیست و هر سال بایستی اینو غنیتر کرد و هر سال بایستی پا رو به جلوتر گذاشت و برای یک به اصطلاح جامعه‌ای که عاری از این تبوخش باشه بایستی تلاش کردیم. این هدف نهایی ماست و برای این منتزبی نیستیم که فقط اینها رو محاکمه بکنن این بخشی از خواسته ماست اون چیزی که بایستی ماقم نشود در افکار و فرهنگ و و روش و کارتر به یک سری جنایتکار بوده که به نظر ما تحصیل بزاره هست و خونخواهی ما از عزیزانمون بیش از هر چیزی به این مسئله مربوط هست سباس گذارم. علی علیه آزاد از شهر کپناک در پایان اگر صحبتی هست در خدمت دونیم زمن که مرکز شهر کپناک آدرس دقیقش و زمان برگزاری اکشن یک بار دیگه بفر شما سپاس هستم از اینکه این وقت رو در اختیار ما گذاشتید امیدوارم که صدای ما رو شنوندگان شما که در آووس و چه جای دیگه هستن میشنونن به صلا امیدواریم اونها هم در همین کمپین به نوعهای مختلفی هر کسی به شکل‌های مختلفی میتونین کمپین رو حمایت بکنین کمپین مختص فقط ما نیست فقط مختص یک جریان سیاسی نیست این کمپین کمپین ملی هست که هر یعنی هر انسان اصلا یک کمپین انسانی هست که برای هر انسانی در هر جایی که هست علایه چنین جنایت بسیج بشه و سرزنش بکنن چنین عمل زشت و کسیفی رو و بتونن جامعهی رو به وجود بیارن که چنین چیزی تکرار نشه اما آدرس ما گملتو هست در مرکز شهر کپنهاک هست که روبروی دفتر امنستی هست یا وارتی در گوگده هست و سفر خیابون که رفت آمد زیادی هست توریستا و مردم زیادی از اونجا رفت آمد میکنن از ساعت دو تا از ساعت یک تا دو نیم هستیم خیلی سپاسگزارم مرسی ممنون از لطف شما و همکاری شما امیدوارم که شما موفق باشید